بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین و علی آل وصحب اجمعین اما بعد ما که مسئله داشتیم در جلسه در جلسه گذشته و ما قبل ما قبل قبل اولین مسئله ای که ما داشتیم که تا توصیه‌ای بود فقط من از باب دور میگم از اون که ما بدونیم چی داریم می خونیم مسئله ای که ما داشتیم این بود که خداوند خالق رازقه چون خداوند خالق ما هست ما باید او را بپرسیم دومین مسئله این بود که خداوند راضی نیست که همراهش همتای قرار بدیم شریک قرار بدیم باهاش خداوند هیچ وقت راضی نیست ولا يرضا عباده الكفر هیچ وقت نه کفرش نه شرکش خداوند راضی نمیشه چون راضی نمیشه مؤمنم نباید راضی بشه جلسه گذشته بود مؤمنم نباید نه به شرک و نه به اهل شرک تن در بده تن در بده راضی باشه از بشرکین باشون دوستی برقرار بکنه باشون هم همنشین بشه با اهل کوف با اهل شرک بحث براءت از باب تاکید این مساله بحث تاکید در مسئله عبودیت چون همش برمیگرده به عبودیت لازمه عبودیت براءت از شرک لازمه ولای خداوند لازمه دوست داشتن خودم چون لازمه عبادت دوست داشتن و تن به در دادن به خداونده خود اصل عبادت الله امروز بازم بحثش قاهیم کرد لازمه شم این عبادت اینه که ما براعت بجویم از اهل معفیت، اهل گناه، اهل بدعت، اهل کف، اهل شک، اون چیزهایی خدا ازش رازی نیست ما باید براعت بجویم. حالا برای تاکید این مسئله امروز میخونیم گفتار معلف در این مسئله يقول المؤلف رحمه الله أسكنه فسيح جناته اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوشيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى تعالى أعبد الله ولا تشرك به شيئا إن كلمة أعلم راه الآن بارس سبوم مادري مش نبيم بازن باين تلاتوف باين نرمي شروع میکنه با دعاک هردن بدون که این مندل بدون خداون بهت ارشاد بده راه نمائید میکنه راه حق را بهت نشون بده با دعا شروع میکنه بدان ای کسی که من این چیلین دعای در حقت میکنم یعنی تو خود دنبال هدایتت باش چون گفتیم بحث حقیده بحث تقلید نیست درش ما باید دنبالش باشیم بدان الان این بدان کلمه بدان اعلام را برای بار سوم میشنویم ما باید دنبالش بشیم دنبال خدا و دنبال حقوق خ خدا اینجا هم بحث امروزمون بحث این که خدا از ما اگو هدیت عبادات، عبادت اینه که ما در الوهیت یکتاش قرار بدیم از ما یکتا پرستی خواسته پس بدان ارشدک الله لطاعته بر طاعتش بر اینکه از الله اطاعت بکنی نه از هوای نفس نه از ابا و اجداد و اذا قيل لهم اتبعوا ما از الله قالوا بل نتبع ما علیه عليه اباءنا مشکین جنین میگفتن اگر بهشون پیامبری می اومد تابع دلیل بشی. طبعه اون کلام الله بشید الله چه از سورات چه از انجیل چه از قرآن چی میگفتن آبا و اجداد منچینین بودن در مسئله اعتقادی که حدف از رسالت پیامبرانه ولقد بعثنا پی کل امت رسولا انعبود الله و شنب طاغود در هر امت پیانبری را پر به خاطر اینکه دعوت به عبودیت بده و دوری از طاغود این دعوت مشترکیه همه پیامبران اینجوری دعوت رو داشتن. این طاعت خداونده خداوند این از من خاصه. ازش اطاعت بکنید اطاعت با بسیرت نه با تقلید، نه اینکه چون پدر و مادران ما مسلمان بودن پس ما دیگه مسلمانیم دیگه دنبال دینداری و دینشناسی نریم نه وزیفه همونه که از دین خودمون با خبر باشیم و دین خودمون رو بشناسیم حالا دین خودمون چی درش هست یکی از مسائلی که درش هست بحث توصیه خداوند به الله صلی الله علیه و سلام اینی که منهجش منهج ابراهیم باشه ان الحنیفیه ملت ابراهیم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدین اینجا میگه اینو بدون که حنیفیت اصل حنف حنیف بودن مائل شدن از شرک هم تو که در لغت بحث شده و بعد در بحث اصطلاح ابراهیم حنیفه یعنی مائل از شرک اموت که خداوند در قرآن میگه ثم اوحينا اليك ان تتبع ملة ابراهيم حنيفا بر الله صلی الله علیه و سلام خداوند میگه ثم اوحينا اليك بهتبع جدی کی چی ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا اینکه که کی باشی اتباع بکنی یعنی پیرابی بکنی نه پیرابی بکنی از ابراهیم حنیف ابراهیمی که حنیفی بود یعنی مائل از شرک بود مائل از گناه بود مائل از اون بدعت که مشرکین آوردن بوده وقتی که خداوند در قرآن دستور بهمون میده یا دستور به رسول الله علیه و به امری میده خطاب به رسول الله میکنه که فلان کار رو انجام بده دلیل بر اینه که اون مسئله خیلی بزرگه کتابشو داره کی قرار میده به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله رسول الله بهش میگه قل اشحب بحیه و دبارش بحی میکنه خطاب بهش میکنه ای محمد صلی الله علیه و سلم ای محمد تو طابع کی باش، اتباع و پیروی بکنی از ابراهیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم نیازی نداشت که تابع ابراهیم بشه. چون مستقلاً وحی نازل میشد. ولی چون بحث نصیحت و توصیح هست بحث راه و روش مشترکی است که بین پیامبران بوده، اینجا هست که خداوند دستور میده به پیامبر علیه الصلاة و سلام، که تو هم مثل ابراهیم باش. اون ابراهیمی که سیرتش در قرآن اومده، اوصافش در قرآن اومده، مثل اون باش. شکی نداریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل ابراهیم و شاید برتر از ابراهیم بوده. همونطور که خود رسول الله صلی اللہ علیه و سلم برتری خودش رو میگه انا سید ولد آدم. من سید فرزندان آدم، یعنی برترین فرزندان آدم هستم. خب مسئله برتر بودن یک سقی هست. مسئله ای که اینجا مد نظر مؤلف هست که ما پیروی داشته باشیم از ابراهیم علیه السلام در توحید، مسئله دیگر پس گفتیم خطاب چون به محمد علیه صلی و السلام از باب اولا مؤمنینن بلکه اولویت و مؤمنان چون رسول الله صلی اللہ علیه و سلام خودش منهجش اونطوری بود بلی خاطر که امر بزرگیه مسئله خیلی بزرگی هست خطاب رو موجه پیامبرش میکنه، تا اینکه مؤمنین ازش درس رو عبرت بگیرن پس حنیفیت دوری از شرک دوری از گناه دوری از کفر اون ملت ابراهیمه اون منهج ابراهیمه که خداوند به رسول الله علیه و سلم در سوره نح توصیه میکنه ثم اوحین الیک ان تتبع ملت ابراهیم حنیف حالا این ملت ابراهیم حنیف این چیه ان تعبد الله وحدا مخلصا له الدين مبنای کلامیه توحید لا اله الا الله واضح ترش این تازی ناگید این جملاتی که ما داریم خلاص می برداشتی از گفته خداوند در قرآن فالمدين قدران در قرآن در سوري الزخرف بسششتا بسهاش وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون براءة جس على الشرك أنها إلا الذي فطرني فإنه سيهدين مجر الله نحن ندق اسمات كلمية توشيد لا إله إلا الله لا إله نافية براءته إلا الله إثباته فلاه درس لا إلها نافية نافية عبوديات أفهمكش إيش خدايني إيش معبود معبودة فراسشنيس إلا الله مجد الله يكتب وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء من ما تعبدون من بريه سام أقول تسيدي كم برأسي يعني هارسيدي هار كم برأسي نافية درس تسمت الدوب مش إلا إلا الذي فطرانی بحث عبودیت نا کردن کلمه لا اله الا الله ده تفسیرش خیلی اختلاف شده مثلا خلف از معتزله از اشاعره از ماتریدیه از کرامیه و دیگر فرقه‌ها به خاطر اون بحثی که اول کردیم آیا ما با نظر استدلال باید به با خدا برسیم یا با طریق من منهجشون به اشتبار است اومدن تفسیر کلمه توحید لا اله الا را رو چنين کردن گفتن اثبات خالق یعنی اینکه ما ثابت بکنیم خالقی هست لا خالق الا الله. اینجینیو اومدن تفسیر کلمه توحیدو کردن کلمه لا اله الا الله. آیا با توجه به این آیه ای که خداوند دستور میده به رسول الله صلی الله علیه و سلم که تو تابع ملت ابراهیم باش. آیا اون ابراهیمی که خداوند برای قومش فرستاد. اومد به قومش گفت که شما باید خالق را بشناسید یا گفت باید معبودتون را بشناسید. و اذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون أنا أتذكر من فرأسي دعوتي بعبودياته كذبت لحق عبودياتي إلا الذي فطرني ما قال أنه إيجاد في عرضه خلقات في عرضه فإنه سيهدين أنه راهي حق للنشوم أنه يقول فرأس تشبشه راهي حق راهي الخضبان وأن هذا صراط مستقيم فتبعوه يجره مستقيم بخضبانه که یک تا باید قرار در اون عبودیت قرارش بدی فقط او را بپرسیم خالصانه و با توجه به بدلی و راه های دیگر و راه ها بکنیم راه های شیطان حالا چی میخواد بدعت باشه چی میخواد شرک و کف باشه هر راهی که شیطان به ما باز میکنه چی میخواد معصیت باشه که منافات داره با کلمه توشید با کلمه با برایی که در کلمه توشید هست منافات داره چرا انکار میشه بر معتدله بر اشاعره و بعد دیگر فرقای خلافت چرا انکار میشه در تفسیر کلمه توحید وقتی خال... که میگه لا اله الا الله الا الله چرا برشون انکار میشه چون خیلی از مشرکینی که بودن قبلا بحثش کردیم خیلی از مشرکین که در زمان رسول الله صلی الله علیه و بودن اقرار داشتن میگه خدا من خالق را زته ولی بود بر هرچند که گفتیم کسانی بودن که خالق را نمیشناختن از صابئه خدا نمیش آده از ابراهیم علیه السلام ولیکن جل اون بشریتی که الان ما ببینیم هنوز هم هست گفتیم بودایی ها و غیر خدایی دارن خدایی را دارن میپرسن ولی خداشونو گم کردن خداوند در قرآن در بحث مشرکین چی میگه کل لمن ما فی السماوات من یعنی بگو آسمانها و زمین از آن کیس لیاقولون الله میگن الله الله قبول داشتن الله را قبول داشتن ولی مشکلشون در کجا بود؟ در عبودیت، در پرستش در سر به سجد نهادن، سر به زلد نهادن در اطاعت ارشدت الله و در طاعت از خداوند طاعت از،, از راه و روش پیامبران در این مشکل داشتن دنباله آیه خیلی مهمه و جعلها کلمه کلمتن باقیه باقیتن, باقیتن فی عقبیهی این کلمه رو ابراهیم باقی گذاشت چه کلمه ای باقی گذاشت؟ چی بود در اون دو تا آیه‌ای که قبل این داشون رسول خدا 27 26 و 27 چی بود چه کلمه بود لا الهه الا الله کلمه توحید ان تعبد الله وحده مخلصا له دی این توضیحی که داره میاد در سن این آیه هست که ما بدونیم که این چیزی که ابراهیم براش فرستاده شده که رسولا داره دعوت میشه داره خدامون بهش میگه که باید تابع اون بشی در کلمه توحید که کلمه توحید نازل ابراهیم چین بوده إثبات عبودية براءة الشر وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون بس إن كلمة توحيبوت أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين أن تعبد الله وحده مخلصا خالصان عبادة قدرك عدان ألا لله الدين خالص بعد ما در دینمون در عبادتمون خدا را یکتا قرار بدیم. فقط او را به فراتیم. دیشبم بحثش کردم. دی. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماد در حدیث پسیکات خدا نام خدا میگوید انا اغنا شرکه عن شرک خنیفرین شما از شرکه. من عمل عملا اشرک معی فيه غیری ترکته و شرکه. شریک قرار داری. چی میخواد غیاب باشه که شرک از بره؟ چی میخواد اون عبادت یا دعاء باشه که شرک نظری بکنه کسی نظری که و نحر و نماز مال خدا بنده کسی سرفش بکنه به خدا بند کفرت اکبره شرکه اکبره دعا هم همینطور دعایی که خاص خدا بنده از, از ما خاصه که او را فقط صدا بزنیم از او فقط به طلبی کسی به طلبه فریاد بدنه صدا بزنه از غیر خدا تو شرک شده این اخلاص نداره پس ما در دعامون که عبادت دعا هو العباده. در دعامون و در عبادتیمون در دیگر عبادات ها از قسم کردن از نز کردن و از دیگر مسائل باید در اونها خدا را یکتا قرار بدیم یکتا پرست باشیم انت الله وحده مخلصا له الدین چرا باید خدا را یکتا قرار بدیم در عبودیتیمون چون در تفسیر کلمه توشید چنین میگن سلف لا،, لا اله معبوده بحق الا الله بحث معبود بودن خداوند در قضیه ابراهیم واضحه که گفتیم تفسیر کلمه توشید در گفته ابراهیم خیلی سریحه و که خدمتش بلا و قسمتش براه هست پس معبود بودن شک درش نیست اینکه خداوند معبوده به حق یکتاست و او رو باید یکتا قرار بدیم فرموده خداوند ذلك بان الله هو الحق خداوند حق و ان ما من دونه هو الباطل يدعون یعنی می طلبن اونهایی که ازشون طلبیده میشه غیر از خداوند شریک در دعای مساله شریک قرار میدهند صدا میزنن غیر از خداوند کسانی که این کارا میکنن خدا را خداوند را در اون عبادتشون در اون دعاشون یکتا قرار ندادن مخلص نبودن اونها دعاشون چیه؟ باطل ذلك بأن الله هو الحق و أنما يدعون من دونه هو الباطل آیا کسی شك داره که مرد پرسی بس باطله؟ باطل اگر شك داره کلمه توحید رو نفهمیده این کلمه توحیدی که خداوند به محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم دستور میده که از ابراهیم تبعیت بکنه دعوت ابراهیم چنین بوده؟ یک تا وبذلك أمر الله جميع الناس بحث توفيد عبادات ضعبة خضابانت بتمامي مردم وخلقهم لها حدفت خلقتهم من بوده هم وطورك خضابان مثالمايات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جن وإنس خلقات نكرتهم مجال براي عبادات بس أي مؤمن أي مسلمان هو بدون عبادت طاعت فقط أزان الله بود وشه اینو باید بدونی باید خدا را یکتا قرار بدید در عبودیتت در علوهیتت در راز و نیازت باید خدا را یکتا قرار بدید و خداوند گفتیم هیچ وقت از ما نمی پذیره اگر در عملی باش دیگر را شریک قرار دادیم چون از اون هدفی که غایهی که ما را خداوند با اون خلقت کرده برای اون خلقت کرده خالش شدیم اما که نیاز این عبادت رو ازش تعریف بکنیم معنای عبادت را توضیح بدیم این عبادت یعنی چی نیازه چون کلمه عبادت شاید برای خیلی ها کلمه گنگ باشه عبادت فکر میکنم بعضی ها اینه که ما سر به سجده بذاریم سر به نماز بذاریم نماز بخونیم روزه بگیریم فکر میکنم فقط عبادت اینه عبادت تنها این نیست عبادت سراتر از اینه عبادت اون چیزی هست که خداوند اون رو دوست داره. شرف رو دوست نداره. چی رو دوست داره؟ اخلاص در عبادت. اون چیزی که خداوند دوست داره. اون چیزی که خداوند دوست داره. چون گفتیم تضاد اون شرک و کفر و معفیت رو دوست داره پس لازمش اینه که چی؟ عبودیت رو دوست داشته باشه، عبادت رو دوست داشته باشه. اون چیزی که خداوند دوست داره. و از آن اعلان رضایت کرده این عبادت حالا هر که بعضی میگه اسم جامعی از اثر هر چیزی که خداوند اعلان رضایت بکنه هر که در لغت بحث یک مضمون دیگه داره در لغت هم هست که امام متبری میگه اصل عبادت یا عبودیت ذلته تن به ذلت و خاری در دادن به خداوند امام متبری مثال میذاره میگه در لغت عرب به راهی که هموار شده راهی که حیوان زیاد از شده شده به طریق معبت میگن اسمش گذاشتن معبت به خاطر اینکه له لحول شده ذلیل شده عبودیت نیتن به زلت در دادن آیا فقط این در عبادت فقط جنبه لغبیش داره که انسان فقط تن به زلت در بده خیلی معنی تراتر این هم داره اون کاری که ما از تن زلت در میدیم چیزی که مخالف هوای نفسمون هست چیزی که شیطان یه چیز دیگه با من خدا یه چیز دیگه نماز بلند شدن چیز راحتی نیست خوبه احسان بلند بشه سخته بر انسان انسانی که میخواد تم به ذلت در بده در نماز صبح غیر از این که خودشو قانع بکنه که چون خدا ازش خواسته پس باید این کار را انجام بده باید راضی هم باشه یعنی باید محبتش هم داشته باشه یعنی با شوق باشه این چیز ما در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم که به بلال می‌گوید اره نبیها یا بلال بلال راحتم منکم انسان با خوشحال بشه که تن به عبادت و تن به لذت خدا در بده عبودیت باید این کلمه را دوست داشته باشه والذین آمن اشد حبا لله باید حبش نسبت به الله ثابت بکن. باید الله رو دوست داشته باشه باید عبادتش رو دوست داشته باشه به خاطر همین کسانی که عبادت را دوست ندارن عبودیت ذلت رو دوست دارن اونها اینو نفاق درشون هست و اذا قاموا للصلاه قاموا قصلا بدون رغبت بلند میشن تحذیر، هشدارم سرت از تحذیر میده حافظ على و والصلاه الوسطی چرا خود تأکید کرده بعد نماز وسطی نماز است چون منافقین که صلات به می دادن بلند نمیشدند نمی اومدند نمی نفس بر نفس خودشون غلبه بکنن تصعبودیت ذلت درش هست و محبت و راضی بودن من نسبت اون چیز یعنی شمایی که الان دنبال دینتون هستید طلب علمم یه نوع عبادته باید از این روشو از این مسلک راضی باشید دوست داشته باشید این راه که انتخاب کردید و بایدم بر نفس خودتون غلبه بکنید چیره بشید بر نفس خودتون که بس بسه نکنه الله ما خسته شدیم حالا بذاریم این برای کتی دیگه کسان دیگه جای گوزین ما هستن خیر این وزیفه است. طلب علم دعوت دادن گفتیم همون تو سوریه و العصر شروع که که همه ما ها مکلفی انسان در خسران و زیان اگر دنبال دین، دنبال علم نباشه و دنبال دعوت نباشه و العصر ان الانسان الذي خس الا الذین آمنوا و آمنوا بالحق. این دعبت دادن وقت وصلت به صفر این وزیفت و در نو در خسران زیانه پس ما بود از خسران زیان خودمونو نجات بدیم و معنا یعبدون یوحیدون معنی عبادتی که در این آیه اومده و وما خلقتو الجن والانس ایلا لیعبدون معناش توحیده چون اصل توحید کلمه توحید لا اله الله چی بود؟ لا معبوده بحق ایلا الله چون اصل کلمه اونه پس معنای عبودیت اینه که خداوند یکتا بشه در عبودیت یعنی اینکه جن و خلقت نکردن من مگر اینکه یکتا پرست بشن فقط الله را پرستن این معنای کلمه عبودیت لا اله الله و اعظم ما امر الله بهی التوحید بزرگترین چیزی که خداوند دستور بهش داده توحیده حتی ما کلمه توحیدی که, که میگیم یکتا یک تا شناسی داریم یا خداشناسی شناسی داریم و یک تاپرستی داریم این دو تا کلمه خداشناسی شناسی و خدای این دو تا کلمه. گفتیم خداشناسی شناسی علم به خدا و افعالش و صفاتش. ربوبیت و اسمو صفات. یعنی این که خداوند خالق و رازیک و, دی... و دیگر صفاتش. این توجیه علمی هست. یک تا قرار دادن خدا در اسم و صفات و افعالش. اما توشید عملی یک تا قرار دادن ما خودمون. یعنی یک تا پرست بشیم. در اعمال خودمون استاد با خداوند. یعنی خالصانه خدا را تفریسی. این مزمون درست میشه. و اعظم امر الله به توحید. کدام توحید؟ توحید در اعمال خودمون. یک تفریسی. و هو افراد الله بالعباده. این یعنی خدا را تک قرار بدهیم. چون لازمه لازمه یک خدا خداشناسی هست. اگر خداشناسی بگیم یک تفریسی رو در بعد نمیگه خدا را شناس خب بعدم بکنه؟ آیا خداشناسی فقط اگر خدا را شناخت نجاتش اس خیر همونطور که ابو جهل و ابو لهبر نجات نداره نجات نمیده مجرد خداشناسی نجات نمیده اون چیزی که نجات میده یک تا فرستی هست افراد خداوند یک تا قرار دادنه خداوند در عبودیت امن قیم حرف جالب میزنه میگه فلي واحد کن واحدا في واحد اعني سبيل الحق والايمان فل واحد برای خدا برای یک کل واحدا یک تا باش در اعمال خودت فی واحدای در, در اون یک راه در اون یک روش اونم روش اسلام یه تسلیم امر اسلام باش اعنی سبیل الحق و ایمان این سبیل حق این راه حق راه حق و ایمان یک تا باش یک راه بپرست یک راه راه بپیما راه قرآن راه سنت اون که پیامبران خدا بودن اون که محمد علیه الصلاه و السلام بود رسول الله صلی الله علیه و سلام بود اون باش در عبودیتش عبودیتش در یک تا پرستید یک حق خدا را به جا اووردی خدا را هم لازمه شناختی و اعظا ما نه عنه الشرك نکن دوتا کلمه با نکن ولا نسبت به توشید عبودیت افراد خدا در عبادت برا الشرك. بزوك ترين شيء إنسان أداة كإنسان بخطر أنزلقت شدة. شاكي داريف؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول نعبد الله وشنب الطامود. بزوك ترين شيء؟ شن هدف الساقطة؟ شن هدف إرسال بيان براني؟ ما بزوك ترين شيء ذك شرك؟ وإما الشرك لظلم عظيم. شرك خیلی ظلم بسيار بزور جهاز. ومن يشرك بالله فقد افترى اسم عظيمة. قناهي بزرقين مرتكب ومن يشرك بالله فقد ظل ظلالا بعيدا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة كسي كشرك بأه الله بيره خدا بهش تشرب رأون حرامي كنين إن الله لا يغفر أن يشرك به شو القدا نهي باش شرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما أواه النار وما للظالمين من أنصار ديكي كسي نتكي أورا نصرات بده أورا نجات بده پس و بزرگترین و عظیمترین گناه شرک شرک در عبودیت و بزرگترین عبادت اخلاق بیا بزرگترین بزرگترین چیزی که ما بهش باید متمسک بشیم عبادت خداوند یک تا قرار دادن خداوند در عبادتش و اعظم ما نهی عنه الشرك و هو دعوه غیره معه تعریف شرک میکنه شریک قرار ان علی الله ندن و هو خلقه این طوری رسول صلی الله علیہ وسلم تعریف شرک میکنه خدا ما را خلقت بکنه بعد بیام شریک در عبادت قرارش بدیم بیای واسطه قرار بدیم غیر خدا را با خدا حالا چی میخواد مرده باشه چی میخواد بود باشه این شرک چه هم بخوام نظری نیازی چیزی به غیر خدا انجام بدیم اینا همه الشرق قرر أيضا الخطبانة وهو دعوة غيره معه والدليل قوله واعبد الله ولا تشرك به شيئا واعبد واعبد الله ولا تشرك به شيئا الله يختار بفرسي ولا تشرك به شيئا نوقي ما قفتي وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فلا تدعو لا قفتي أجد في سياق النهى والنحبيات وبعد أن كربيات ناكره در سیاق نفعی یا نهویات اونجا احدن داشتیم فلا تدعو مع وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد احدنا criteria در سیاق نهی و قصدین كثيرا با خدا نپرسید فلا تدعوا صدا نزنید اونجا گفتیم استنباط کردیم وقتی که همه کس رو داخل کرد پیامبران شامل میشه ملائکه هم شامل میشه چون بحثش از این بود که درست نیست نما ملائکه منا پیامبران خدا رو واسطه قرار بدید فلا تدعوا الله احد اینجا هم همینه و الله ولا تشرك به شيئا الله یک طرف و هیچ نوع شرکی نیارید. شرک در سیاق نهی و ولا ولات هیچ نوع شرکی نیارید. علما میگن وقتی که اینجا شرک را اینطوری بیان کرد شرک از و شرک اکبر را شامل میشه لازمه عبودیت اینه که انسان هیچ نوع گناهی انجام نده هیچ گناهی انجام نده. سر به اطاعت از ابلیس در نده. همون طورت خدا بند. دستورش به مومنین اینه که اسلام را به تمامش اجرا بندازی در زندگی مون. به اجرا در بیاری. ایوها الذین آمنوا كافة. كافة یا ایوها الگین آمن و فی سلم کافه. کافه به همه ایز دین عمل بکنید. و لا خطوات شیطان راه شیطان را نگیرید. اونا چی میخواد شریک باشه، شرک اکبر باشه، چی میخواد شرک از هر باشه. ما باید دوری بکنیم از راه روش مشرکین، از راه روش فصاق مفرطعين، این لازم به خاطر همین، کتاب بحثمون حدیث معاص قرار بدیم. وقتی که معاذ پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، رسول الله صلی الله علیه و بهش توصیه میکرد، چی گفت؟ ای معاذ، چه دیدی حق الله علی العباد؟ میدونی حق الله چیه؟ بر بندگان و حق بندگان بر الله چیه؟ من ترجمهش رو میگم سریع که وقت خیلی گرفته شده خیلی زیاد صحبت کردی این معاز میدونی اگر ان انشاءالله بعدا مفسد پیرامون این حدیث صحبت خواهیم کرد بعد گفت نمیدونم الله و رسول و اعلم سه بار تکرار میکنه سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماین حق خداوند بروندگان اینه که الله را در عبادت یک تا قرار بدن شرکی را نیارن حقیقت بندگان برای خدا الله یعظم من لا یشرک به شیئا کسی که هیچ نوع شرکی نو نیورده به خداوند خداوند خدا عذابش نده این کمال اما اگر ختصدار شد دیگه زیر مشیت خداوند وارد میشه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك الا شرک اکبر شرک اکبر که اصلا نمیبخشه و انسان خالد مخلد در شندن انسان تا شرک من دونه خودش خودشو نجات بده افتادن در شرک انسان باید از شرک بترسه بعد از ابراهیمی که از شرک ترسید برای خودش و امتش کی میتونه تصمیم بکنه که در شرک نیفته ابراهیم میگه چی گفت گفت و جنوب نی و بنی من منو فرزندانم را از پرستش غیرتو پرستش بودها نجات بده دور بکن همون فنفیت پس انسان باید بدونه همون که ذکر رسول الله صلی علیه و سلام میپرسید عرفت به میپرسید میگه عرفت لا للشر و لكن لكي شر رو شناختن به خاطری که درش نیفتم میپرسید اصلا اینکه شر درش میفته ما باید بدونیم چه شرکه چه خدامن دوست نداره؟ ازش راضی نیست تا درش نیفتیم. این حق خداوند بر برگردن ما. و اگر حق این کلمه توحید را به جا اووردیم لا اله الا الله اون که خدامن از منخواسته و الله و لکش رکوبیشه آجانان که در سلسل نتا اومده اگر حقش را ادا بکنیم جهنم خدا بر ما حرام میشه. و اگر نه اگر شرط اکبر مرتکب شدیم بهشت خدا بر اک در ما حرام مشي كننت خداون يكرمات انه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من انصار صلى الله عليه محمد وعلى ال محمد